شریعت کی ماد جلد دوم فصل چهارم شاب آشق زندگی میل به زندگی با حبوت روح به کیهان فیزیکی آغاز میگردد تمامی روح ها از این ذریب بقا برخوردارند برخی بیشتر و بعضی کمتر اما این معیاری مشترک بوده و به حدی در عمق زمیر ارواح فردی چکانیده شده است که ازامن بایستی توسط مخانتا استاد حق در غیر حیات پرده از آن برداشته شود و به جوینده چیزی خلاقه در زندگیش اعطا نماید در صورتی که جوینده از هدفی خلاقه در زندگی خود برخوردار نباشد ذریبه وقایش نزول میابد روح به عنوان راهنمای درونی انسان بدون توجه به آلام جهان جویای چیزی است که فنا باشد شاید روی کرده انسان در مراقبه فضای بیکران وسعت اندیشه یا خالیایی از خلغست باشد اما میتواند تواند باز لحظه روشنگری نیز التجا نماید لحظه ای که با خودش رستگاری تکوینی به همراه می آبرد. این وارستگی وضعیتی بیرون از حیطه کلام و غیر قابل تعلیم است و هر کس شخصاً بایستی آن را تجربه نماید این است که روح را سیغل می دهد و با ایسار آن از این محبت بهرمند می گردد که بعد از مرگ فیزیکی هرگز به این جهان باز نگردد شاب یا باکتی واصل حلقه هفتم می باشد تا شخص عاشق کل هستی نباشد شایستگی وسال به بهشتی را نخواهد داشت او تمامی کردارهای پرهیز کارانه و سرسپردگی های را به کناری نهاده و ذهن خیش را به دور از امیال منفی فقط و فقط در جهت مراقبه بر سوگماد ماد کبیر آن علت الال قرار می دهد. روح هر لحظه در آستانه دولت عشق است در حالی که فیش فانی چون فانوسی در باد سوسو می زند آنان که به این شکل به تمامیت حیات عشق می دهند ای خویشتندار خیشتندار بوده و هیچگاه منتظر شفقت دیگران و یا تایید و حمایت خلق نیستند کسی که شاب نباشد به جای اکتسابات و توانایی‌های های معنویش به استادی خیش می‌والد اگر شخصی ادعای برخورداری از بالاترین درجه رشد معنوی را داشته باشد خود این ادعا گواه آن است که او ابداً به طبق گفته‌هایش هایش نمی باشد شاب علا نهایت توازع و فروتنی را در نزد مدعیان از خود بروز می‌دهد. ایشان هیچگاه عملی انجام نمی‌دهند که جنبه تظاهر از بحر این فروتنی باشد شاب هرگز از رفتار دیگران شکایت نمی کند. حتی اگر حقوقش ضایع گردد به هیچ عنوان با خشم پاسخ نمیدهد، و پس از آن دیگر در این بار کلامی به زبان نمی آورد. او نسبت به همه چیز سپاس و قدرشناس شناس بوده و ابدا نسبت به بخت و اقبال خود افسوس نمیخورد. او بدون توجه به آن که چه چیز باعث پریشانیش شده در پی مقصر کردن دیگران چه در نزد آنها و چه در غیابشان نیست هرگز کلامی منافی شعن انسان به زبانش جاری نمی شود و به هیچ عنوان با دیگران در باب اشتباهاتشان داد سخن نمی دهد ایشان پیوسته فضائل مثبت خیش را توسعه میدهند و در ارتباط با تینت شیطانی کل جز در خصوص پاسخ به سوالات سکوت اختیار می کنند. شب هیچگاه به اعمال زاهدانه یا ریاضت های نامعقول روی نمی آورد. این مشخصه است که او را از انواع آموزش های شرقی متمایز می سازد. او همواره در حال ایثار است و به هیچ نحو دوچار تنبلی و بتالت نمیگردد و چیزی از هم نوع خود طلب نمی کند مگر عشق او رهنورد راه اک جریان قابل سماع حیات است و هر آن گوشی شنوا وجود داشته باشد آموزش میدهد دهد شب می کشد تا به اطرافیانش نشان دهد که برهم پروردگار جهان ذهنی خدای متعال نیست او با ظرافت خاطرنشان میکند که طی طریق به سوی سوگماد از مجرای ماهانتا استاد حق در غیبت حیات جریان مییابد کسانی که خلاف این را آموزش میدهند در خاکدان جهل خود باقی مانده و مسیر حقیقی به سوی ساحت الهی را شناسایی نخواهند کرد شاب بایستی سالک را محیای ملاقات با مهانتا استاد حق در قید حیات نماید هیچ کس شایسته دیدار مهانتا استاد حق در قید حیات نیست مگر آنکه آمادگیهای درونی لازم را کسب کرده باشد این کل سر الاسرار در یافتن مهانتاست منحاضا عده قلیلی آن هم گوشه ای از حقیقت را دریافت میدارند. لیکن دیکن همینان هستند که با تنویر از کار به پیامآوران طوده های بشریت بدل می شوند تمامی فضائل اخلاقی که انسان بایستی در زندگی از آنها برخوردار باشد هرگز در کتاب شریعت کیسود مورد قفلت واقع نشدند نجابت شفقت، خیشتنداری در کلام و اعمال خیرخواهی، حمایت از ضعفا، عشق به زیردست، احترام و تمکین نسبت به بالادست و احترام به آگاهی دیگران، مو به مو و در کمال دقت و ظرافت و به زبانی تحسین برانگیز بر شمرده مرده شدند. اک کمال درجه هستیت انسان در آگاهی معنوی است. واروازه است که ماهانتا استاد حق در غیر حیات که در نقش یک مظهر بیرونی و نظم کیهانی سلطنت می کند نیز انسانی کامل است بین آگاهی انسانی و آگاهی الهی اختلاف درجه است البته انسان در اثنای روند توسعه خیش معالاً تبدیل به اک می شود و طبق چنین مفهومی اک زیبند شدن به است، نه خود آن خدا وجود این نظم کیهانی گواه این حقیقت است که هر آن کس که در لحظه حال قبل از در به پیشگاه سوگماد به درک خود آن نائل شده باشد وارد زندگی اک می شود این، والاترین شکل حیات انسان همانا استحالش به اک می باشد انسان آنگاه به کمال میرسد که در یک زندگی نماید. آنگاه که با سیر در آفاق و انفس همانند همه واصلان به خودآشناسی میرسد و تبدیل به خود اک می میشود. مبدأ حرکت او سیر به درون هاست و میل فطری پرستش و جستجوی حقیقت در سرشت آدمی است که او را به سوی سودماد آن جوهره الوهیت باز میگرداند. انسان موضوم کسی است که تمامی زندگیش را صرف سعی و عمل در راستای یافتن اک نموده و گوش به نیوشیدن کلامش سپرده باشد او پس از خلاصی از کالبد فقط تبدیل به اک نمی شود بلکه ابزار جاودانی است که به عنوان مجرائی برای کلام خداوند عمل می نماید متولد نشده است زیرا به وجود آمدن یا به اراده است و یا به اجبار که هر دو فرض در مورد آن مقام پوچ و به دور از عقل می باشد هیچکس قادر نیست که آن را نامحدود و یا محدود تلقی نماید در صورتی که نامحدود باشد آغاز میان و پایانی ندارد و اصلا هیچ چیز نیست و اگر محدود باشد بایستی قید و بند و تعلق بر خود پذیرد و دیگر یگانه نیست و به برهان مشابه نه در حرکت است و نه در استراحت كوتاه سخنآن که به هیچ وجه نمیتوان خصوصیتی به آن نسبت داد. پدیرش و فهم سودماد بدین طریق به طور روشن‌تری توسط استاد اک فوبیکوانس بیان شده است. هیچکس نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری حقیقت سودماد و آنچرا که من آموزش می‌دهم درک نخواهد کرد. اگر هم کسی با حقیقت مطلق مواجه شود هرگز متوجه حضورش نخواهد شد هر کجا که جستجو کنیم چیزی بیش از فرضیات و احتمالات نخواهیم یافت و در ادامه چنین میگوید در پیرامون دایره نقطه آغاز و پایان یکی هستند عبدیت آغاز و پایان زندگی فردی می وحدت به کسرت و کسرت به وحدت تبدل می ولیکن وحدت و کسرت هر دو با هم وجود دارند و تکشهای برخاسته از قلب ذات الهی به واسطه بازگشت دائم به عبدیت است که کامل می گردد. اگر خدا همه چیز باشد و فنا ناپذیر، پس به طور قطع انسانها اشیاء و جهانها همگی ناپدید میگردند از این نقطه است که فرد بایستی با تسلسل اقلانی وداع کرده و به جهل خود در ورود به شبکی تئوری های مستحکم ذهنی اعتراف نماید تئوری‌هایی که دیگر پایه و اساس تعابیرش نمی باشند امای فیات متافیزیکی بیش نیستند. تصورات کن که به جهت آشتی دادن های اقلانی خشک و مطلق و به اصطلاح معنوی بشر با اعمالش شک یافتند. سوگماد علت العلل همه چیز است. این برای همگان قابل فهم نیست به جز کتانی که در پی یافتن پاسخی جامعه در حل معمای زندگی می روشند و به طور کلی هیچ کس را زرفیت چونین درکی نیست مگر آنان که طریق عک را در پیش می گیرند پروردگار یکتا سوگماد نیست مگر این که به عنوان آن درک شود و آن همه چیز باشد زیرا اگر آن همه چیز است، پس در همه چیز داخل می باشد و تصور چیزهایی که آن را محدود میسازد محال است علت هستی یا علت اصلی سوق است یکی از وجوه این واجب الوجود به ذات آراسته بودن به صفات جاودانگی و حقیقت است زیرا سوق در فضا و زمان محدود نمی‌شود هر آنچه که بخشی از آن یا در آن باشد معدوم نمی‌گردد مگر آنکه که سوگمات نیست معدوم گردد از آنجایی که این از محالات هست سوگماد از طریق کارگزاران خیش یعنی اک، پرودگاران، حکام و والیان هر طبقه اساتید وایراگی و وجودهایی که همکاران آن می باشند نازر بر است. تمامی این عوامل در خدمت ماهانتا استاد حق در غیر حیات می باشند کالبد معنوی او در تمامی کیهان هستی حضور دارد بنابراین شخص با طبقات کیهان های سر و کار دارد هیچیک از جهان نابود نمی بلکه فقط کمرنگ شده و جلای خود را از دست می‌دهند و متناببن در پهنه ابدیت متبلور می شوند. این مختص جهان‌های پایین است که گرفتار مایا و به عبارتی توهم آگاهی هستند. ممکن است که این ساختارها دیگر برای فرد یا افراد وجود نداشته باشند، اما همچنان در بستر ابدیت حضور دارند. ولی انسان دیگر آنها را نمی‌بیند و به طور مشابه هرچند که خود غید قید و بندهایی را برای خود مقدر می‌سازد. تا خود را از طریق ماهان تا متجلی نبوده و از اتمهای خودش آگاهی حاصل نماید ولی هرگز محدود نگشته و آلم مطلق به آن می باشد به خاطر همین ناتوانی در معرفت سوگناد است که انسان با ابداع انواع مخلوقات و در بالاترین حد با قرار دادن خداوندی آدم وشت در جایگاه آن شراده کنجکاوی خود را فرو نشانده است انسان تصور میکرد که آن را به دینگونه خواهد یافت پس مذاهب با خدایان خود و به نیت خدمت به یک علت کبیر به همراه آینها قربانیها احکام توصیه های اخلاقی و بهشتها به و دوزخهایشان تولد یافتند رشته حیاتی که آنها را به سودمات و مود، بیش از پیش مورد قفلت قرار گرفت و بر روی این قفلت تاکید شد و فقط در برخی از مفهوم های و دامهای متافیزیکی مورد توجه قرار گرفت. رمز و راز اک که با چنین دقت و ظرافتی از آن میشد نظیر خرواری از فرمول مذهبی و اسراری، شعائر آینی، ترسها، کتمان و سکوت عرفا دست میگردید لیکن دوباره و دوباره توسط اساتید اک احیا شده و به کسانی که آنها را میپذیرند ارزانی میگردد این روندی است که در طی قرون و اعثار متمادی تکرار شده است را که حقیقت خدا و وجوه آن برای جایره مغز آدمی زاد خیلی بزرگ است راز بزرگتر و یا راز اصلی آن است که همه چیز راز هستند وقتی که فرد طریق اکنکار را در پیش می گیرد متوجه می شود آنان که از او سبقت گرفتند جانشی استونتر از او نداشتند بلکه فقط مدت زمان طولانی تری را در این سیاره به سر بردند و تجربیاتی بیشتر از او داشتند این راز از این در طول تاریخ مکتوم خواهد ماند و اگر هم توسط اکیست رمزگشایی شود باز هم آن را در گنجینه اسرار پنهان می سازد اندیشه که دار و حتی کلام آدمی در اختیار خودش نمی باشد. او یک عروسک خیمه بازی است که توسط نخهای نامرئی جهانهای اسری به این سو و آنسو کشیده می شود. اگر این را بفهمد، پردهها کنار رفته و بیشتر درباره خودش می آموزد. اما در صورتی که از این جبر مکانیکی با نشود و یا آن را باور نکند، از سر یک چیزی نمی آموزد و چیزی هم برایش تغییر نمی کند بشر یک ماشین با خواصی منحسد به فرد است اون است که با بسترسازی مناسب در رفتار کاملا به ماشین بودنش واقف می‌گردد و قادر خواهد بود که راههایی را برای رهایی از این جبر بیابد سپس سیر فردیش در طریق به این نشان میدهد که او خیلی بزرگ تر از آن است که خود را سفا وجودی معنوی با قدرت کنترل بر عاطف و تمایلاتش ببیند. اما پیش از اقتصااب هر گونه قدرت یا توانایی جدیدی لازم است که کیسیتی را که در عالم درون از وجودشان مطلع میگردد در خود توسعه دهد و البته تحت هدایت ماهانتا حق در غیر حیات به این کار مبادرت فرزد نقطه آغازین گشایش معنری او نقد حالات خیشتن می باشد او بایستی در طی حصول خودشناسی در جهان منفی یاد بگیرد که چه کسی هست و چه چیزی نیست به این معنا که می باید درک کند که او دارای کیفیاتی که به وی تلغین شدند نمی باشد و اصلون بر همه اینها بایستی آگاهی و اراده خیش را در راستای رشد معنوی پرورش دهد مهمترین و گمراه کننده ترین این کیفیت‌ها ها آگاهی است تحول او با دگرگون شدن معنای آگاهی اتفاق می‌افتد و سپس با تسلط تدریجی بر آن استمرار می تعریف آگاهی در واقع عبارت از نوع خاصی از هوشیاری در انسان است که مستقل از فعالیت ذهنی می باشد نخستین مرحله هوشیاری از خیش است. سپس هوشیاری از اینکه کیست و کجاست. در مراحل بعدی هوشیاری از که که میداند و از آنچه که نمیداند. بنابراین این فرد بایستی این توان را داشته باشد که در هر لحظه تعیین نماید که آگاه هست یا خیر؟ یعنی فقط خود فرد مرجع تمیز آگاهی یا عدم آگاهی در هر لحظه است در این حال فعالیت های بیرونی فرد گواهی بر حضور یا عدم حضور آگاهی در او نمی باشد اهمیت آگاهی هرگز به تمامی درک نشده است زیرا فهم آگاهی فقط در بستر فعالیت های معنوی میثر است. زمانی که چرف در خصوص توطه مختلف آگاهی یعنی افکار، احساسات، انگیزشها و ادراکات، سخن میگوید در واقع همه چیز را بر پایه یک اشتباه اساسی تأبیر می نماید. و آن عبارت از آگاهی مخلوط با قابلیت های روانی روان اما زمانی که سطوح آگاهی را با در نظر گرفتن طبقات مختلف تبیین می نماید در آگاهی معنوی سیر می کند. آگاهی درجه بندی ندارد اما شخص بایستی یاری برای خودش داشته باشد زیرا ظرف ذهن قادر به دریافت تمامیت آگاهی نمی باشد ذهن فقط می‌تواند بر حسب قیاس به خود عمل نماید زیرا در جهانهای پایین چاره‌ای ای به جز این ندارد از آنجایی که نمیتواند به اقالیم برتر خداوند برسد شروع به سنجش آگاهی خود در سطوح روانی می نماید مشکل اصلی این است که انسان نمیتواند همیشه نسبت به خودش آگاهی داشته باشد توهم آگاهی نسبت به خودش توسط حافظه و فرایندهای فیزیکی خلق می شود و مقارن به آن او چهار نوع وضعیت آگاهی را در طبقه فیزیکی شناسایی می کند که از خواب بیداری خیش آگاهی یا خداشناسی و آگاهی حقیقی یا اشراف در زندگی روزمره فرد اطلاع اندکی نسبت به آگاهی حقیقی دارد و هر چند معتقد است که خویش را میشناسد اما این خودشناسی فقط در مقاطعی خاص چشمک زده و مه می میشود. و چه بسا فرد اصلاً آن را تشخیص ندهد زیرا به هیچ وجه نمیداند که خودشناسی شامل چه مقولاتی است ضمن این های اجمالی و ناگهانی آگاهی در لحظات خاصی بروز می نماید مثلا در وضعیت عمیق آسفی، در مواجهه با خطر در شرایط غیرمنتظره و یا موقعیت های دهنده؟ با تمرینات معنوی اک ممارست و پشتکار چلا بر آگاهی تسلط می و در حقیقت از خودش آگاه می آن هم با تمامی محصولاتی که آگاهی برایش به ارمغان می آورد. ماشین انسانی دارای هفت گونه کار کرده است نخست عقل دوم احساس سوم قرائت، چهارم اعمال بیرونی کالبد در زمان و مکان پنجم میل جنسی ششم تیشاگاهی و هفتم آگاهی حقیقی پنج کار کرده اول قابل مشاهده و فراگیری و آن را تحت عنوان معرفت نفس میشناسیم. این همان چیزی است که در مباحث کلامی به عنوان خودشناسی از آن یاد می شود اما خیش با مطالعه چهار کار کرده اول آغاز می شود تفکر احساس غریزه و تحرک اولین یا پایین وضعیت آگاهی خواب می باشد این به طور خالص وضعیتی است زیرا انسان در محاصره رؤیاهاست هاست و تمامی قابلیت های روانیش بدون جهتگیری مشخص کار می کنند به همین دلیل است که به جز قلیلی همگان تحت استیلای حوزه ی روانی قرار دارند حتی اگر روانبینان بدانند که چه چیز چه وقت و چگونه در حال وقوع است قادر به کنترل این نیرو نمی باشند یگانه طریق جهت دادن به خواب و رؤیاها هدایت و مراقبت استاد حق در قید حیات می باشد هیچ چلایی در وضعیت خواب به آزادی نمی رسد زیرا بایستی توسط استاد حق در قید حیات از لابلای سطوح مختلف رؤیاها راهنمایی شود، تا به جهانهای بالا برسد اگر به خودش این مجال را بدهد که تحت مراقبت استاد حق در قید حیات قرار گیرد فرصت مطالعه شریعت کیسودماد را در معابد حکمت زرین به دست می آورن. دومین سطح آگاهی آگاهی بیدار شده می باشد در این هنگام او خواب نیست ولیکن احساس نوعی تضاد یا عدم تعادل را دارد که سر البته در وضعیت خواب قایه در اکثر مواقع آنچه که در طول خواب و در رؤیابینی روی داده است انسان را در وضعیت آگاهی بیدار شده تحت تأثیر قرار می دهند انسان بیشتر است در این وضعیت کار می‌کند. برای او سخت است که خود را با سایر سطوح آگاهی تطبیق دهد. اما او با خیشت و در صورت برخورداری از اراده و اشتیاق قادر است وضعیت‌های بالاتری از آگاهی را به کف آورد. دومین وضعیت از آگاهی همان است که در آن انسان نسبت به خودش آگاه می‌گردد. انسان عموما تصور میکند که خودش را میشناسد و به عبارت دیگر هر لحظه که اراده کند از خودش آگاه است بافعل از اینکه در خودشناسی حقیقی فرد از خودش خارج میگردد و برای اولین بار آغاز به معرفت حقیقی خود و اعمالش مینماید در چهارمین مرتبه از آگاهی به جایی میرسیم که فرد از چارچوب زندگیش خارج میگردد. او از زندگی منسفل شده و حالا میتواند با دیدگاهی که فاقد حالات آسفی میباشد به روند حیاتش بنگرد او اکنون میتواند هجاب معنی اشیاء را در خودشان کشف و رؤیت نماید و همه چیز را آن گونه که هستند ببیند. اخلاقیات جهان فیزیکی در هیچیک یک از این سطوح آگاهی کاری از پیش نمیبرند. برند های اخلاقی در زندگی انسان جنبه اکتسابی دارند که با حب و بغت های واقعی که حاصل تقلید و تفکر هستند به دست می آیند. این حب و های نقش بسیار مهم و در این حال مخاطر آمیزی را در زندگی انسان بازی می کنند زندگی او به خوبی پیش می تا اینکه منیت او شروع به تسلط بر زندگیش می نماید و این خیلی انبوهی از نتیجه گیری های را به همراه می آبرد. البته لازم است که انسان حد مشخصی از حوییت یا همان نفس را که مقتضای زندگی است دارا باشد اما نباید تبدیل به شرط اصلی بقای او گردد اگر چون این شود نتیجهش تعصب است بعضی موضوعات او را خوشحال و برخی آزوردش ساخته و با تحریک او حتی موجبات ترس را در وجودش فراهم می آورند. در این صورت دیگر قادر نخواهد بود که به کناری بنشیند و کل وجوه حیات خیش را همچون ستاره ای درخشان که از دور دست رسد میگردد نظاره نمایند بلکه ناگزیر است یک زندگی جبری را ادامه دهد او پدیده ها و تجلیات مخربی را در خودش کشف می و هرچه چه مسائل دیگری بر او مکشوف می شود و به تدریج راه مهار کردن آنها را می برخی از این صفات کمتر تر بوده ولی در عین حال کمتر هم تحت کنترل وی هستند. او متوجه می شود که این دسته از خصائص جبری‌تر بوده و امکان دارد که در دراز مدت بدخیم شوند. دروغ یکی از همین خصائص است که در برخی افراد قابل مهار باشد لیکن قابل جایگزینی بوده و همانند سایر صفات مکانیکی می بر آن تسلط پیدا کرد. جایی بعدی که بررسی عمیق‌تری را میطلاد تصاویر فکری انسان می باشد. انسان پس از تسلط به خود سریعا به این نتیجه می رسد که مانع اصلی بر سر راه کشف نفس تصاویر درونیش می‌باشند. او میل دارد چیزی را ببیند اما در عوض تصورش جایگزین درخواست او شده، و او به سرعت موضوع تقاضایش را فراموش می کند سپس به این درک نائل می گردد که اسلوب کلی تفکر طبعه بیش نیست و سهم ناچیزی در خیال و قوه تبعیز دارد او به این نتیجه می رسد که تفکر رکنی منفی و مربوط به کر می باشد چیزی که قابل کنترل نبوده و همواره او را از تصمیمات هوشیارانه دور نگاه میدارد. تفکر در این حالت تقریبا همانند دروغ کیفیتی مضبون می باشد زیرا شفت شروع به تصور چیزی می کند تا خودش را اعضا نماید و سریعا به آنچه تصور کرده یا حداقل به به از آن وابسته می شود تأثیر بازدارنده بعدی بروز حالات و احساسات منفی می باشد که شامل تمامی احساسات محتنی بر خشونت افسردگی تأسف به حال خود خشم بدبینی ترس آزردگی غم رشک و حسد و غیره است به زبان ساده شخص چون این حالاتی را به عنوان اصول کاملا طبیعی و حتی حیاتی به حساب میآورد این را نمی‌توان صداقت نامید ظهور احساسات منفی و عدم توانایی فرد در ممانعت از خیشازاری از مظاهر قدرت کل می باشد اینها هم کیفیاتی جبری هستند و زمانی که چلا به طبقه پنجم رسیده و شناسی را تجربه می کند بر آنها اشراف می بعد از حالات منفی عاطفی چلا متوجه یک صفت جالب توجه دیگر در خودش می شود و آن پرحرفی می باشد. از آنجایی که حرف زدن با دیگران ظاهرا به کسی ذره نمیزند تبدیل به عادت می گردد. آنها همیشه در حال حرف زدن هستند. هر کجا که باشند، هنگام کار، سفر و حتی موقعی که میخواهند بخوابند اگر کسی گوش شنوا باشد هرگز دست از سخن بر نمیدارند غیر این صورت با خودشان حرف میزنند. انسان در درک این ناهنجاری‌های های چاردانه و جبری مشکل دارد دروغ، تفکر، ظهور احساسات منفی و پرحرسی او بایستی زندگی پس از زندگی با آنها مبارزه کند آن هم بدون کمک ماهانتا استاد حق در قید حیات یعنی بدون بینش راهگوشا و بدون مساعدت حقیقی حتی اگر انسان مراجع مطمئنی را هم بیابد فراموش میکند که از آنها استفاده کند و فراموش میکند که خود را بیرون از خودش مشاهده کند او مجدداً به خواب میرود و تا بیدار نشود آنها را حس نمی کند اما با راهنمایی های ماهانتا دیگر به خواب نمی رود حوییت انصر عجیبی است که انسان بیش از نینی از عمرش را صرف آن می کند. او با همه چیز تعیین هویت می کند. با آنچه می گوید هر آنچه احساس می کند، هر آنچه به آن اعتقاد دارد، چیزهایی که بهدانها اعتقاد ندارد، آنچه آرزو می کند. آن آنچه آرزویش را ندارد و کلا با جاذبه ها و دافعه های درون و بیرون این هویت را ترسیم می کند. مادامی که در وضعیت خواب قرار دارد، همه چیز در زندگی او را جذب می نماید و توان جدا شدن از عقاید احساسات یا موضوعی که مجزوبش کرده است را ندارد. بشر با قرار گرفتن در قالبی که آن را هویت خود می داند قادر به احراض دیدگاه بیطرفانه نسبت به موضوعاتی که این هویت را برایش تعیین میکنند نمی باشد. او حتی با کوچکترین چیزی، جدهه میگیرد و به دین ترتیب خیشتن را در برابر واکنش های محیطی و جبریش نفوذ ناپدیر می نماید و به دست خیش خود را آزرده می درست همانند عوارض چهارگانه دروغ تفکر بروز احساسات منفی و پرحرفی و او مهرز می شود که همه اینها، تجلیات منشأی از هویت هستند و اگر می از شر هویت خلاص شود از بسیاری عوارض احمقانه و بیهوده نجات می یافت. افسوس که نمیداند هویت باعث استهلاک ساختار فیزیکی و ذهنی می شود. او توجه و مراقبت از خود را فقط به خاطر نگرانی از های جامعه ای به جای می اینکه آیا او در نظر دیگران فردی مثبت است یا خیر، مردم راجع به او چه فکری می‌کنند؟ آیا تحسینش می‌کنند؟ او درگیر تردید، ترس و بدبینی در ارتباطات اجتماعی خود میباشد. چون این ملاحظه هایی نقش مهمی در زندگی دارند اما در برخی انسان‌ها تبدیل به یک وسواس ذهنی می‌شوند. زندگیشان ایشان مملو از ارزشیابی، تدید، نگرانی و سو زن می میباشد و هیچ جایی برای چیز دیگری در آگاهی باقی نمیماند. این دقیقا مقصود کل است. زیرا پت از آن اهرام کنترل فرد را به دست میگیرد. بدترین شگرد کل آن است که فرد را نسبت به اشتباهات و تقصیرات خودش کور ولی در خصوص کاستی ها و خطاهای دیگران بینا می کند بین یک فرد از دیگری در کلام و لفاظی آسان است اما این زبان حقیقی نیست بلکه تنها نوعی برقراری ارتباط و تفهیم چیزهایی که دیگران می و مایلند از این طریق به مقاصد خود دست یابند این بزرگترین معضل مهانتا استاد حق در قید حیات با چلاهاست زیرا چلاها در محیطهای مختلفی رشد کردند و روحیات متفاوت، عقاید مذهبی منحصر و دیدگاه های مطلقی را برای خود ساختند و بنابراین قادر به فهمیدن و گشودن خیش بر کلام و آموزش های استاد حق در قید حیات نیستند معمولا متوجه نمی که استاد با روحشان سخن میگوید استاد میداند که روح در تمامی کیهانهای الهی فنانا است و به همین دلیل با همگان به همین روش سخن میگوید این زبان است که اده قلیلی آن را میفهمند این رشته ای متفاوت از عقاید و دیدگاه هاست و در حقیقتی گرد آمده که در ذهن نمیگنجد. نباید نبایستی این زبان کیهانی را به عنوان یک آگاهی متافیزیکی تعبیر نبود این یک زبان جهان شمول است درست به مستاق علائم ریاضی که جهانی هستند این زبان است و در بردارنده همه چیز حتی کلامی چند از این زبان به چلا توانایی تفکر و گفتار شفافتری را می کند در طبقه فیزیکی تناسخ و زیرساخت های اجتماعی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند هر ای بر اساس نسبت کارما و تناسخ خود شکل میگیرد. این دو تز محکم و منطقی را که از انواع کجروی انسانی ناشی می شود، به جامعه ارائه می کنند. پس مسلم است که کارما و تناسخ بنیاد شخصیت فردی است زمانی که فرد تعالیم منظم و دشوار معنوی اکرا متحمل می شود دیگر بازگشت مجددی به طبقه فیزیکی نخواهد داشت آگاهی از کارما تفاوت چشمگیری را هم در رفتار انسان و هم حیوانات باعث می شود و انسان می آموزد که او در اصارت پیوندهای های کارمیک خود می باشد نشان می دهد که تمدن و حکومت از اصلی به اصل دیگر تغییر کرده و در هر دوره قالبی متناسب با رشد معنوی توده مردم به خود گرفته است انسان با نزول از دوره طلایی دیر یا زود به یک واقعیت اعتراف می نماید و آن اینکه لزوم وجود سلاطین حکام، اشراف، روحانیون، قانونگذاری، تمم های قانونی تماما نشانه انحطاط نژادی بوده و برخلاف طرز تلقی عمومی نمایانگر سطح بالای تمدن نمی باشد بهتر است در مورد این نکته بحث شود به موازات ظهور هر چه بیشتر تمایلات اهریمنی در جامعه بایستی الزاماً یک سری تنظیمات برای محافظت از اعضای جامعه اتخاذ گرده این یک حقه قدیمی است که توسط سلاطین و روحانیون به توده ها الگاه می شود که آنچه از آنها صادل می شود اراده خداست قانون ادالت داندا نام دارد میدان عمل کرده این قانون هم حقوق الهی و هم حقوق اجتماعی انسان ها که ماده نظر طلاتین است میباشد این رابطه ای دو طرفه است بدین معنا که هیچ یک نمیتواند حقوق دیگری را زایع نماید اجبار نوشتن قانون در کتاب ها و استفاده از آن به عنوان تنها معخذ حفظ حقوق اجتماعی آن هم با رعایت استانداردهای اخلاقی در زندگی خاطی از ترجمه در جامعه است آنگاه که نجاد بشر در معیارهای تمدن، به زوال گراید مرکزیت قانون از قلب انسانها به احکام مکتوب منتقل می گردد. یعنی استانداردهای های معنوی نهادینه در بسم آگاهی فردی تبدیل به قوانین مدون می به عبارت دیگر هر زمان که این قوانین به جای آن که ریشه در قلب مردم داشته باشند در کتاب ها نهاده شدند قروب تمدن رخ نموده زیرا آگاهی هر یک از اعضای آن غروب کرده است فقط از اک از چنین مسائلی باخبرند و همباره تلاش کردند که در طول تاریخ بشریت را از ورته انهتات به منزل ترقی سوق دهند این تکیف سنگی است اما پس از دوره طلایی در گدشته های خیلی دور سلسله اساتید اک که هر یک از آنها زمانی را در این سیاره سپری کردند در احصار نقوه مثل و قیبه ناظر تحولات و انحرافات بشری بودند به آرامی اصر آهن از راه رسید که به همراه خود بالاترین میزان انحراف فردی و جمعی را به ظهور رسانید. در خلال همین اصر است که قوانین مدرن، دولت‌ها و احکام مطلقه ظاهر می‌شوند. فرض عمومی بر آن است که انسان تفرقتاً از عقل و شعور برخوردار است. و چون این تحولاتی را به پای افتقای نسل خود دارد اما بعید است که انسان خیش را با این قواعد ارتقا داده باشد بلکه عملا در برابر موج نیروی کل بیدفاع شده است او به هیچ وجه قادر به تشخیص این نیروی مخرب نیست و اگر هم نسبت به آن آگاهی یابد آن را ساده میپندارد فارما از طریق تناسخ متجلی شده و دارای دو بخش است علت و عدالت این دو عوامل اصلی ایجاد کارما هستند. در حقیقت نافرمانی از قانون دارما برای فرد یا ها کارما به وجود می آورد. دارما قانون عدالت و درستی، قانون زندگی و در یک کلام همه آن چیزی است که بایستی انجام شود. اما در هیچ کجا کسی به وضوح نمیگوید که علت و عدالت به بچشکس باعث کشش های کارمیک در زندگی فرد میشوند این بدان علت است که آدمیان با قانون مکتوب پیش میروند هیچکس نمیتواند نمی تواند بر اساس قوانین خدا زندگی کند مگر پیروان اک تقریبا تمامی احکام و فرائض میگویند به حق رفتار کن اما هیچکس به معنای این کلمات پی نمیبرد مگر استاد حق در قید حیات که به قلب مسئله وارد شده است در عوض بیشتر مذاهب قوانین خود را در کتاب جمع آوری می کنند و برای نقض این قوانین جذا و جریمه تعیین می نمایند تقریبا همه آنها موازع خود را با گفتن این جمله جمعبندی می کنند اراده خدا را به جای آورد معنی این جمله آن است که احکام قانونگذار اراده خداوند فرض شدهاند. آنها که مسئول نگارش اراده خداوندی بوده و هستند، عبارت از روحانیون، پیامبران، پادشاهان و صد البته دیکتاتورهای تاریخ می باشند. زمانی که اقتدار آنها خط شدار می شود، ایشان مسترب گشته و این موقعیت متزلزل را از طریق نوشتهجات مذهبی اهمی نمایند آنها درکی از اینکه چه چیزی رفتار خوب و بد را شکل می‌دهد و ایده‌ای از سایر مسائل اخلاقی ندارند ماهانتا استاد حق در قید حیات میگوید هر آنچه که حامل کیفیت و خواص هر یک از پنج نفسانیات ذهن باشد و راه پیشرفت روح و شکوفایی او در مسیر آزادی شود یا این روند را به تأخیر اندازد نادرست بوده و کارما میانفریند پس هر آنچه چه کارمای خوب تولید کند مثبت و هر آنچه چه کارمای بد به بار آورد منفی است اگر عملی باعث تأخیر هر شخص دیگری در مسیر آزادی معنوی شود آن هم منفی نبایستی از پیشروی کسی در طریق خداشناسی ممانعت شود. اما هر گونه عملی که رشد معنوی شخص دیگری را تسهیل نماید خوب و پسندیده تلقی میگردد خواه شخص زینف دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد اصل اول در دایره نیت فرد بایستی رشد و بهرهوری همگان باشد شعار قدیمی ادالت به خاطر اکثریت مایه تأسف است زیرا به گمراهی می انجامد. گاهی اوقات به نام جامعه در جهت توجیه جنایات به کار می روید. ولی ولیکن هر عملی که باعث سلب به حق حیات یک فرد شود هرگز نمی تواند از نظر اخلاقی مثبت باشد. یگانه راه زدودن گرد مصائب نور و صوت سود بخش می باشد وقتی این اتفاق به اشاره استاد حق در غیر حیات روی دهد تمامی تیرگی و کاستی ها همچون طلوع آفتاب سورگاهی از پشت شب تار محو می یکی از ذراعفی که در نوشتجات اکبران تحکید می شود بیخبری و اهمال در مورد حضور استاد حق در غیر حیات است یافتن او واقعا نعمت بزرگی است زیرا میلیون ها نفر از برترین انسان ها در راه یافتن او توفیقی به دست نیاوردند چه چیزی ایشان را ترغیب به جستجوی آزادی معنوی میکند وقتی چیزی بیش از خوردن خوابیدن تولید مثل و معاش نمیدانند بعید است که اینجوریه نگان بدانند که واقعا به دنبال چه هستند و بتوانند محرکی که ایشان را به سوی طلب این طریق عجیب و دشوار سوق داده است را شناسایی کنند زیرا آگاهی ایشان در مراتب نازله است کلید مقصن اسرار الهی رحمت بلند و عشق عظیم سوگماد متعال برای این مردمان است گوهر این جهان عقل نیست بلکه آن عشق است هیچکس به سوی مهانتا هدایت نمی شود مگر کارمای نیکویش این را برای او رقم زند بنابراین این روحها ها بایستی انباشتی از کارمای نیک داشته باشند هرچند که ظاهر و موقعیت دنیوی آنها چون این چیزی را نشان ندهد کارمای خوب ایشان در راستای تحصیل ثروت و مقامات دنیاوی سرس نمی شود بلکه به کار واقعی حائض اهمیت می‌آید و آن دارشان ملاقات با استاد حق در قید حیات است عشق ظرفیت بالای عشق ورزیدن و ایثار است که آنها را به سوی استاد حق در قید حیات هدایت کرده است آنها یک چیز بیشتر نمی و آن اینکه استاد حق در قید حیات ایشان را از کجیها و بلایای جهان نجات دهد تمامی آنچه چه که مورد نیاز است همین می باشد هیچ چیز دیگری مرحم دل نمی شود ملاقات با استاد حق در قید حیات برتر از تمامی سروت ها و کامیابی های دنیاوی است معنی زد و نقیز هستی است که عشق و رحمت بیش از هر کیفیت دیگری فرد را به استاد حق در قید حیات نزدیک می کند این از سر فیض و عشق سودماد است که از مجرای استاد حق در قید حیات به مسکینان و فروتنان زندگی میبخشد. این رهنوردان سرمایه ای به جز عشق ندارند و آن را بیدریب نثار استاد حق در قید حیات می کند. عشق پرزیدن ترین که روح است و عشق زرفیت فراختری را نسبت به اعمال قدرت بر هم نوع دارا می باشد این فروتنان شاهراه های و سعب را با متانت طی می کنند ایشان بیمرکب و با این ناچیز و ملزومات اندک به استاد حق در قید حیات میرسند. اینان به مراتب برکات بیشترین است به نسبت کسانی که سوار بر مرکبهای تند را با کول باری سنگین می‌روند تا ماهانتا استاد حق در قید حیات را بیابند، دریافت می‌کنند. بنابراین این عشق کلید دروازه بهشت است و اهدی نمی‌تواند آن را از کسی که کسبش نموده بازپس گیرد. کیمیای عشق، ایمان و تواضع فضائلی هستند که می‌بایستی در همان ابتدا قبل از تشرف به سوی ماهانتا استاد حق در غیر حیات در وجود جوینده مستحکم شدند اینها صفاتی هستند که به توسط زعفا و مظلومان کسب می‌کردند. صفاتی ساده و کودکانه که همه برای ورود به اقلیم خدایی در طریق عشق نیازمند آن هستند عشق و فقط عشق است که به جوینده ورود به اقالیم بهشتی را می‌دهد. آن سکه است که بایستی هنگام ورود به ساحات رفیع روح الهی تقدیم شود هر چیز دیگری بیفایده است زیرا دروازه های این جهان به هیچ علت دیگری به عشق باز نمی شوند. اگر کارمای انسان محصولی برایش به بار مگر ظرفیتی از, از برای عشق وزی پس او هزاران هزار زندگی گذشتش را بیهود سپری نکرده است عشق است که خاضعترین روح ها را به درجه ای از تعالی میرساند که او را مشرف بر زندگی بشری به جهانهای خدایی رهنمون می کردد. هر آن کس که مخلصانه و از روی توازو و به میزانی اندک عشق میورزد کمک بزرگی به ارتقاء سطح آگاهی کل نژاد بشر می‌نماید. بنابراین آنگاه که پردهها فرو افتد و یکی از این مسکینان بی‌ادعا در سواحل نورانی جهان ساچخاند، رو رودر روی یک فاضل آفرینش‌دیش قرار گیرد چه فرقی میان آن دو وجود دارد؟ آن فاضل چه مزایایی بیشتر از او دارد هیچ زیرا علم و اندیشش نمیتواند او را فراتر از ساحل ساچخاند عروک دهد ذهن و منطق هرگز چنین قدرت و قابلیتی ندارند فقط عشق و تنها عشق و عنایت ماهانتا استاد حق در غیر حیات از چنین نیرویی برخوردارند ذهن تا ناهیهی می میابد که به آن تعلق دارد آنجا که بخش اعظم دوم جهانهای خدا نام دارد در آنجا بایستی رها شود ذهن برای روحی که اشتیاق ورود به جهانهای روح خالص را دارد کارساز نوی باشد هیچ تفاوتی بین روحی که سراپا نیاز و آری از ابزار کند ذهن خیش است با یک قول ذهنی وجود ندارد هر دو قطراتی از همان اقیانوس بیکران اشق و رحمت می باشند در این اقیانوس فیض روح خالص و عشق لایزال موج میزند. اثاره عشق اشق در شخصی یا مانترای واصل اک تعبیه شده است می توان آن را به یک نقمه معنوی تشبیه نمود که ترنم آن در یک دوره زمانی معین به تدریج چلا را به مرکز زنده ارتعاشات معنوی که دقیقا با مرکز ارتعاش قبی از چلا تنظیم شدهاند وصل می کاربر کار این مانترا قادر خواهد بود که خود را با این انرژی منطبق کرده و آن را در جهت منافع و صلاح خود و دیگران هدایت نماید مانتراها جزء لاینفک زندگی چلای اک می باشند و در هر یک از مقاطع مهم شکوفای معنوی او به سوی خدا مورد استفاده قرار می‌گیرند این قدرت عشق است که حاله جاودان ایثار و بخشایش را در اطراف او نقش می‌زند زمانی که چلا قدم در مسیر خیشنضباتی استاد می‌گذارد استاد حق در قید حیات هر از چندگاهی برای او یک کلمه شخصی خاص معین می‌کند معمولا این اتفاق در وصل به حلقه دوم روی میدهد. همچنین استاد حق در قید حیات متعهد و ملزم به نظارت برخیش انزباطی چلا در تکرار منترای شخصیش می باشد زیرا باعث یک پیوند معنوی میان آنها می گردد. به همین خاطر است که استاد حق در قید حیات برگزارش وصل ماهیانه تأکید دارد زیرا با رؤیت این گزارش ها و همچنین سایر شگرد های معنویش میتواند بگوید که آیا چلا بر زمزمه ذکر خود پایداری وزیده است یا خیر؟ امکان دارد که ماهانتا استاد حق در قید حیات مستقیماً و از روی حکمت مانترایی را مناسب حال چلا انتخاب کند و شاید هم به چلا آموزش دهد که مانترای خود را در مشاهدات وضعیت رؤیا و خلصه هایش از خیش درون استنباط نماید رمزمه مانترا میتواند با صدای بلند در سکوت و یا نجباگونه باشد از آنجایی که زیکار در بعضی مواقع تا چندین ساعت ادامه می, می توان برای استمرار تمرکز از این قالب های آوایی به صورت یک درمان استفاده نمود تمامی شیوه های معمول زیر و بمسازی برای تغییر روحیه در ذکر مجاز است به شرطی که معنا تغییر نکند. مثل تنوع در ضربا هنگ، بلندی صدا، نوع لهن و سایر موارد مفید می باشد. اما برای حفظ نیروی مانترا تلفظ صحیح کلمه و ریتم بایستی دقیقا رعایت شود این اصل آخر اجباری است زیرا در صورت عدم رعایت آن عبری اصیری از ادراکات عاطفی آفریده خواهد شد ترنم مانترا تولید گرداب عظیمی از تأثیرات معنبی می نماید که انصار اصلی آن عشق می باشد مهم نیست که فرد تا چه درجه ای تمرکز کرده باشد اما با تمرکز ذهن بر روی مانترا احساس عمیقی از آرامش و عشق دار آن فرآیندی است که سرنخ توجه را به عمل ترین نقطه ساحل وصل سازد به طوری که افکار تحتانی را پشت سر نهاده و به لایه‌های تر روح که تحت انقباض و فشار است، میرساند باور کارایی مانترا برای افراد عادی مشکل است. به ضم ایشان این فقط صدایی است که با واکنش های مغزی و توسط هوایی که فرد را احاطه کرده به یک محدوده ارتعاشتی حمل می شود. اما ابزاری قوی برای عشق و رهایی نزد چلایی است که آن را به طور منظم تمرین می کند. او بر انسانهایی ظاهر می شود که هرگز آنها را نمیشناسد. مسیر زندگی آنها را از نیروهای کل به سوی اک تغییر میدهد و اک ایشان را به سوی خدا هدایت میکنند شاید ادجه اندکی متوجه شوند که واقعا چه اتفاقی افتاده اما مانترای تمرین شده توسط چلا چه به صورت انفرادی و چه به شکل جمعی باعث تحول در جهانها میشود این انرژی ابتدا در انسان و سپس در جهانهای بهشتی و کلن هر کجا که حق اقتضا کند سرازی میگردد. این استاد حق در قید حیات است که فرصت عشق و دیدن را به واسطه ماهانتا در اختیار چلا میگذارد او منترای شخصی را به کسانی میدهد که استحقاقش را داشته باشند و از آن پس دیگر با خود چلاست که با تبدیل خیش به ناظری معنوی و فعال مسئولیت آن را پذیرفته و بهترین بهره را از آن ببرد